فصل هفتم برنامه ریزی سازماندهی شده تبلور میل در عمل گام ششم به سمت ثروت پس تا اینجا یاد گرفته اید که هر چیزی که انسان خلق می کند یا لازم دارد به شکل یک میل شروع می شود میلی که در اولین دور سفر از امور انتظایی شروع می شود و به امور عینی می رسد و از کارگاه تخیل سردر می آبرد. یعنی جایی که برنامه هایی برای تبدیل آن تنظیم و تدوین می شود. در فصل دوم آموختید که در اولین حرکت برای تبدیل میل به پول به معادل پولیش شش گام مشخص و عملی بردارید. یکی از این گام ها شکلگیری یک یا چند برنامه مشخص و عملی است که این تغییر از طریق آن صورت می گیرد. حالا یاد میگیرید که برنامه هایی را تنظیم کنید که عملی باشند یعنی الف، با هر چند نفر که برای شکلگیری و انجام برنامه یا برنامه برای کسب پول لازم دارید متحد شوید. و از اصل مغز متفکر که در فصل بعد توصیف می شود استفاده کنید اطاعت از این دستور العمل قطعاً حیاتی است از آن غفلت نکنید ب قبل از اینکه اتحاد مغز متفکرتان را تشکیل دهید امتیاز و منافع خود را مشخص کنید و در ازای همکاری اعضای گروهتان به آنها پیشنهاد کمک بدهید هیچ کسی نیست که بدون اینکه شکلی از جبران داشته باشد به صورت نامحدود کار کند. هیچ آدم باهوشی از دیگری نمیخواهد یا انتظار ندارد که بدون جبران کافی کار کند هرچند این جبران ممکن است همیشه به شکل پول نباشد جیم طوری برنامه ریزی کنید که حداقل هفته ای دو بار با اعضای گروه مغز متفکرتان دیدار کنید و اگر ممکن بود تعداد این دیدارها را افزایش دهید تا برنامه یا برنامه‌های لازم برای کسب پول را با هم تکمیل کنید دال هارمونی کامل بین خودتان و اعضای گروه مغز متفکرتان را حفظ کنید. اگر از اینکه این دستور الامل را کلمه به کلمه اجرا کنید باز بمانید، ممکن است با شکست مواجه شوید. جایی که هارمونی کامل حکم فرما نباشد، اصل مغز متفکر نمیتواند حکم فرما باشد. این واقعیت ها را به یاد داشته باشید. نخست: شما درگیر کار بسیار مهمی میشوید برای اینکه از موفقیت مطمئن شوید، باید هایی داشته باشید که بینقص باشند. دوم، باید تجربه، تحصیلات، توانایی ذاتی و تخیل ذهنهای دیگر را داشته باشید. این با روشهایی هماهنگ است که هر فردی که ثروت زیاد اندوخته باشد، از آنها پیروی کرده است. هیچ فردی بدون همکاری دیگران، تجربه و تحصیلات توانایی ذاتی و شناخت کافی ندارد که تضمین کند ثروت هنگفتی را خواهد اندوخت هر ای که در راستای تلاش برای اندوختن پول اتخاذ کنید باید آفریده مشترک خودتان و هر عضو دیگر گروه مغز متفکرتان باشد برنامه های خودتان را می توانید در کل یا به صورت جزئی ابدا کنید اما توجه داشته باشید که آن برنامه به وسیله اعضای گروه مغز متفکرتان چک شود و مورد تایید قرار گیرد اگر برنامه اولی که در پیش میگیرید به طور موفقیت آمیز عمل نکند یک برنامه جدید جایگزین آن کنید اگر این برنامه جدید هم نتوانست کارایی داشته باشد، برنامه دیگری را جایگزین آن کنید تا اینکه که پیدا کنید که کارایی داشته باشد. این نقطه ای است که اکثریت افراد شکست میخورند و علت آن کمبود پشتکار در خلق ایده های جدید برای جایگزین کردن آن هاست. باهوشترین کسی که زنده است نمیتواند بدون اینکه برنامه داشته باشد که عملی و کارآمد باشند تواند پول بیاندو زد یا هر مسئولیت دیگری را بر عهده بگیرد. وقتی برنامه هایتان با شکست مواجه می شوند، این واقعیت را در ذهن و به یاد داشته باشید که وقتی برنامه هایتان شکست میخورند، این شکست موقتی و شکست دائمی نیست. فقط بدان معناست که هایتان درست نبودند. برنامه های دیگری تنظیم کنید و دوباره شروع کنید. توماس ادیسون صدها بار شکست خورد تا بالاخره توانست لامپ التهابی الکتریکی را تکمیل کند. به عبارت دیگر، او صدها بار با شکست موقتی مواجه شد تا اینکه تلاشهایش قرین موفقیت شد. شکست موقتی فقط باید به معنای یک چیز باشد و آن چیز این است که فرد آگاه می شود که برنامهش اشکالی دارد میلیون ها نفر با بدبختی، فلاکت و فقر زندگی می کنند چون فاقد برنامه درستی برای اندوختن ثروت هستند هنری فورد ثروت هنگفتی اندوخت نه به این خاطر که ذهن عالی داشت بلکه به این خاطر که ای را اتخاذ و دنبال کرد که درست بود هزاران نفر هستند که تحصیلاتی بهتر از تحصیلات فورد دارند ولی همه آنها در فقر زندگی می کنند چون آنها برنامه درستی برای اندوختن ثروت ندارند دستاورد شما نمی نمیتواند بزرگتر از برنامه های درستتان باشد ممکن است این گزاره بدیهی و در عین حال درست باشد ساموئل اینسویل ثروت خود را که برابر با 100 میلیون دلار بود از دست داد ثروت ایننسپل بر اساس برنامه هایی به دست آمد که درست بودند. رکود اقتصادی باعث شد آقای ایننسول برنامههایش را تغییر دهد و این تغییر شکست موقتی را ایجاد کرد چون برنامه های جدیدش درست نبودند. حالا آقای اینسپل پیر شده است و در نتیجه شکست واقعی را به جای شکست موقتی میپذیرد اما اگر تجربهاش باعث شکست واقعی شود علتش این بود که او فاقد پشت پشتکار برای بازسازی برنامههای جدیدش بود هیچکس شکست نمیخورد، مگر اینکه در ذهن خود تسلیم شود. این نکته چندین بار تکرار خواهد شد، چون وقتی اولین علامت شکست ظاهر میشود، به راحتی میتوان ناک آوت شد. وقتی جیمز جی هیل برای نخستین بار تلاش کرد سرمایه لازم را برای ساخت یک راه آهن از شرق به غرب فراهم آورد، او نیز از طریق برنامه های جدید شکست را به پیروزی تبدیل کرد. هنری فورد نه فقط در ابتدای حرفه اتومبیل سازگیش، بلکه بعد از اینکه به موفقیت فراوان رسید، با شکست موقتی مواجه شد. او برنامه های جدید را خلق کرد و به سمت پیروزی مالی به راه افتاد. افرادی را می بیننیم که ثروت فراوانی جمع کردند اما غالبا فقط پیروزی را میبینند و از شکست موقتی که باید قبل از رسیدن به موفقیت بر آنها غلبه کنند چشم پوشی می هیچیک هیچ از پیروان این فلسفه نمی توانند به طور منطقی انتظار داشته باشند که بدون شکست موقتی به ثروت فراوان برسند. وقتی شکست حاصل می شود، آن را به عنوان علامتی دهنده داله بر اینکه که برنامه هایتان درست نبوده، بپذیرید. پس دادن آن برنامه هایتان را بازسازی کنید و یک بار دیگر به سمت هدفی که بسیار آرزوی آن را دارید، حرکت کنید. اگر قبل از اینکه به هدفتان برسید تسلیم شوید، در واقع جا زده اید و از کار در رفته اید. کسی که از زیر کار در می رود، هرگز برنده نمی شود و یک برنده هرگز از زیر کار در نمی رود. جملات بالا را روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را جایی بگذارید که هر شب قبل از خواب و هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب آن را ببینید وقتی شروع می کنید به انتخاب اعضایی برای گروه مغز متفکرتان تلاش کنید که اعضایی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند بعضی از افراد این باور احمقانه را میپذیرند که فقط پول میتواند بی پول بیاورد این درست نیست میل فقط از طریق اصولی که در اینجا ارائه میشود به معادل مادیش تبدیل میشود و همچنین میل است که پول از طریق آن درآورده میشود پول به خودی خود فقط یک شیء بی حرکت و ساکن است نمیتواند حرکت، فکر یا صحبت کند ولی وقتی یک نفر که آن را میخواهد آن را به میتواند صدای آن را بشنود. برنامه ریزی برای فروش خدمات بقیه این فصل به توصیف شیوه ها و راههایی برای بازاریابی برای خدمات شخصی اختصاصی یافته است. اطلاعاتی که در اینجا ارائه شدند برای هر کسی که نوعی از خدمات شخصی را به بازار ارزه می کند، کمک مفیدی خواهد بود اما برای کسانی که آرزو دارند در حرفه انتخابیشان به رهبری برسند منفعتی بسیار گران قیمت دارد برنامه هوشمندانه در هر کاری که برای اندوختن ثروت تراحید شده است برای موفقیت ضرورت دارد در اینجا دستورالعملهایی مفصل برای کسانی که باید با فروش خدمات شخصی شروع به اندوختن ثروت نمایند ارائه شده است. آگاهی از این نکته که عملا همه ثروت هنگفت در ازای خدمات فردی یا از فروش ایدهها به دست می آید باید دلگرم کننده باشد. کسی که مالامو ندارد چه چیزی باید به جز ایده ها و خدمات شخصی داشته باشد که در ازای کسب ثروت بپردازد. در کل میتوان گفت دو نوع فرد در دنیا وجود دارد. یک نوع، رهبر و نوع دیگر پیرو است. در ابتدا تصمیم بگیرید که میخواهید در شغل انتخابیتان رهبر شوید یا یک پیرو باقی بمانید. تفاوت موجود در جبران بسیار زیاد است. پیرو نمی‌تواند به لحاظ منطقی انتظار چیزی را داشته باشد که یک رهبر مستحق آن است. با این حال، بسیاری از پیروان اشتباه می‌کنند و چنین انتظاراتی دارند. پیرو بودن مایه بدنامی نیست، از طرف دیگر پیرو ماندن هم مایه خوشنامی نیست. اکثر رهبران بزرگ ابتدا در مقام پیرو بودند. آنها رهبران بزرگی شدند چون پیروان باهوشی بودند. به چند مورد کسی که هوشمندانه از یک رهبر پیروی می کند نمی تواند یک رهبر کارامت باشد کسی که می تواند با بیشترین کارایی از یک رهبر پیروی کند معمولا کسی است که با بیشترین سرعت به رهبری می رسد یک پیرو باهوش امتیازات فراوانی دارد و یکی از آنها فرصت کسب آگاهی و شناخت از رهبر خود است خصوصیات اصل رهبری موارد زیر خصوصیات مهم رهبری هستند 1 جرأت تزلزل ناپذیر بر اساس شناخت خویشتن و شناخت دیگران هیچ پیروی دوست ندارد رهبری بر او مسلط گردد که فاقد اعتماد به نفس و جرأت باشد هیچ پیرو باهوشی به مدت طولانی تحت تسلط چنین رهبری نخواهد بود 2 خیشتنداری کسی که نمیتواند خیشتندار باشد هرگز نمیتواند دیگران را کنترل کند خیشتنداری سرمشق عالی است برای پیروان رهبر سرمشقی که پیروان باهوشتر از آن تقلید خواهند کرد سه حس قوی ادالت تلبی بدون حس انصاف و ادالت هیچ رهبری نمیتواند احترام پیروان را برانگیزد و حفظ کند چهار مشخص بودن تصمیم کسی که در تصمیمات خود متزلزل است نشان می دهد از خودش مطمئن نیست. او نمی تواند دیگران را به طور موفقیت آمیزی رهبری کند. پنج مشخص بودن برنامه رهبر موفق باید کار خود را برنامه ریزی کند و روی برنامه خود کار کند. رهبری که بدون برنامه های عملی و مشخص با حدس و گمان پیش می رود مثل کشتی است که سکان ندارد 6. عادت به انجام کاری بیشتر از دست دریافتی یکی از بایسته های رهبری است که رهبر باید مایل باشد بیش از آنچه از پیروانش می خواهد کار کند 7. شخصیت دلپذیر هیچ آدم شلخته و بیدقتی نمیتواند رهبری موفق شود. رهبری مستلزم احترام است. پیروان به رهبری که از لحاظ عوامل دلپذیر نمره بالایی نمیگیرد، احترام نمیگذارند. هشت، همدردی و درک کردن رهبر موفق باید با پیروان خود همدردی کند. علاوه بر این، او باید آنها و مشکلاتشان را درک کند. 9. تسلط بر جزئیات رهبری موفق مستلزم تسلط بر جزئیات موقعیت رهبر است. 10. تمایل به برعهده گرفتن مسئولیت کل رهبری موفق باید مایل باشد مسئولیت اشتباهات و کمبودهای پیروانش را بر عهده بگیرد. اگر او سعی کند این مسئولیت را تغییر دهد، رهبر باقی نخواهد ماند. اگر یکی از پیروان اشتباه کند و خودش را بی کفایت نشان دهد، رهبر باید حواسش باشد که او کسی است که شکست خورده است. یازده همکاری رهبر موفق باید اصل تلاش مبتنی بر همکاری را درک کند و به آن جامعه عمل بپوشاند و قادر باشد پیروانش را برانگیزد که همین کار را بکنند. رهبری مستلزم قدرت و قدرت مستلزم همکاری است. دو نوع شیوه رهبری وجود دارد. اولین و اثر بخش ترین شیوه رهبری رهبری است که با رضایت و همدردی پیروان همراه باشد. دومین شیوه رهبری اجباری است که بدون رضایت و همدردی پیروان است. تاریخ سرشار از شواهدی است که نشان میدهند رهبری اجباری نمی تواند تداوم پیدا کند. سقوط و نابودی دیکتاتورها و پادشاهان معنادار است، یعنی مردم از رهبری اجباری به صورت نامحدود پیروی نمی کنند. دنیا وارد اصر جدیدی از رابطه بین رهبران و پیروان شده است که این آشکارا مستلزم رهبران جدید و نوع جدیدی از رهبری در بازار کسب و کار و صنعت است. کسانی که به مکتب قدیمی و رهبری اجباری تعلق دارند باید نوع جدیدی از رهبری یا همان همکاری را درک کنند تا در کسوت پیروان درآیند این افراد راهی غیر از این ندارند ناپلئون کاریزر ویلهلم از آلمان تزار روسیه و پادشاه اسپانیا نمونه‌هایی از رهبران مستبد هستند دوره رهبری آنها به سر آمده به راحتی میتوان نمونه های شاخص این رهبران را در حوزه‌های کسب و کار، مالی و کارگری نام برد که از آریکه قدرت به پایین کشیده شدند یا شناسایی شدند که کنار گذاشته شوند رهبری همراه با رضایت پیروان تنها مدلی است که می تداوم یابد ممکن است مردم موقتاً از رهبری موقت پیروی کنند اما آنها این کار را از روی میل انجام نمی دهند. مدل جدید رهبری که در این فصل و چند فصل دیگر توصیف خواهد شد از این عوامل 11گانه رهبری استقبال خواهد کرد کسی که این اصول را مبنای رهبری خود قرار دهد فرصت فراوانی برای رهبری در هر طبقه از جامعه پیدا خواهد کرد رکود اقتصادی معروف آمریکا عمدتاً به این خاطر طولانی شد که دنیا فاقد مدل رهبری جدید بود در پایان رکود اقتصادی، تقاضا برای رهبرانی که بتوانند روش های جدید را عملی کنند، تا حد زیادی از عرضه آن فراتر رفته است. بعضی از رهبرانی که از مدل قدیمی هستند، اصلاح خواهند شد و خود را با مدل جدید رهبری تطبیق خواهند داد. ولی در کل میتوان گفت دنیا باید دنبال مدل جدیدی از رهبری باشد. این ضرورت میتواند برای شما یک فرصت باشد. 10. علت اصلی شکست در رهبری حالا به اشتباهات اصلی رهبرانی که شکست میخورند میپردازیم چون دانستن این نکته که چه کاری نباید انجام داد درست به اندازه دانستن این که چه کاری باید انجام داد ضروری است. 1. ناتوانی در سازماندهی جزئیات رهبری کارآمد مستلزم توانایی سازماندهی و تسلط بر جزئیات است هیچ رهبر واقعی و راستینی نیست که آنقدر پرمشغله باشد که نتواند کاری که در حد و اندازه رهبری است و از او خواسته می شود را انجام دهد. وقتی کسی ام از رهبر یا پیرو اعتراف می کند که آنقدر پرمشقله است که نمی تواند برنامه های خود را تغییر دهد یا به یک موضوع یا کار فوری توجه کند در واقع اعتراف می کند که ناکارآمد است. رهبر موفق باید بر همه جزئیات مربوط به مقام و موقعیت خود مسلط باشد البته این بدان معناست که او باید عادت کند جزئیات را به معاونان توانمند واگذار کند دو فقدان توازن رهبران بزرگ تمایل دارند در صورتی که لازم باشد هر نوع کاری که از دیگران میخواهند را خودشان نیز انجام دهند بزرگترین شما خدمتگزارترین شماست حقیقتی است که همهی رهبران توانمند آن را رایت می‌کنند و با آن احترام می‌گذارند. س. ایجاد انتظار غلط دستمزد. سومین علت شکست رهبری رهبری است که رهبر در قبال آنچه فرد می‌داند دستمزد بدهد، نه در قبال آنچه پیروان با دانسته هایشان انجام می‌دهند. دنیا به کسی به خاطر دانسته دستمزد نمی نمیدهد بلکه به خاطر آنچه انجام میدهد یا دیگران را سوق میدهد که کاری انجام دهند می میدهد. چهار ترس از رقابت پیروان رهبری که میترسد یکی از پیروانش جایش را بگیرد به این ترس خود دیر یا زود جامعه عمل میپوشاند. رهبر توانا جانشین هایی را تربیت می کند که اگر لازم باشد بعضی از کارهای خود را به آنها واگذار یا تفیض نماید. فقط به این روش است که رهبر می‌تواند خود را متکسر کند و خود را آماده کند که در جاهای فراوانی باشد و به طور همزمان به خیلی از چیزها توجه کند. این یک حقیقت همیشگی است که افراد بیشتر به خاطر توانایی‌هایشان یعنی وادار کردن دیگران به انجام کارها دستمزد دریافت می‌کنند نه به خاطر کارهایی که خودشان با تلاش خودشان انجام می‌دهند یک رهبر کارآمد به واسطه ی شناختی که از کارش دارد و به واسطه ی جاذبه شخصیتش کارایی دیگران را بسیار بالا میبرد و آنها را وادار میکند که خدماتی بیشتر و بهتر از آنچه بدون کمک او انجام میدادند انجام دهند. پنج، عدم تخیل. رهبری که تخیل نداشته باشد قادر نیست از احتمالی ها برآید و برنامههایی تدوین کند که به وسیله آنها پیروان خود را به طور کارامد هدایت کند شش، خودخواهی. رهبری که همه افتخار کار پیروان خود را از آن خودش می داند، قطعاً مورد تنفر قرار می رهبری که واقعا بزرگ باشد، هیچی که از افتخارات را از آن خود نمی داند. اگر مایه افتخاری وجود داشته باشد خورسند می شود که آن افتخار از آن پیروان خود باشد و به اسم پیروانش نوشته شود چون میداند که بسیاری از مردم بیشتر برای اینکه مورد تقدیر و سپاسگزاری قرار بگیرند کار میکنند نه فقط برای کسب پول 7 افراط و تفرید پیروان به رهبری که افراط و تفرید کند احترام نمیگذارند افراط و تفرید در هر شکلی باشد استقامت و سرزندگی فرد را نابود می کند شاید بهتر بود این مورد را در ابتدا ذکر می کردیم اگر با اعتمادی که به رهبر می شود او به همکاران و به بالا دستها و پایین دست خود وفادار نباشد نمی رهبری خود را حفظ کند بیوفایی انسان را به خاک سیاه می و او را چنان که شایسته است بی احترام می نماید بی‌وفایی یکی از علل شکست در میان همه اخشار جامع است. 9. تاکید بر اقتدار و قدرت رهبری. رهبر کارآمد با تشویق و ترغیب رهبری می‌کند، نه با تلاش برای القای ترس در قلب پیروانش. رهبری که سعی می‌کند پیروان خود را با قدرت تحت تأثیر قرار دهد، در مقوله رهبران زورمدار قرار می‌گیرد. اگر رهبری واقعا رهبر باشد، کافیست این واقعیت را با رفتار، همدردی، درک و شناخت و انصاف نشان دهد، نه با زور و قدرت. ده، تاکید بر عنوان شغلی رهبر توانمند لازم ندارد که عنوان شغلی خاصی داشته باشد تا پیروانش به او احترام بگذارند. رهبری که زیاد روی عنوانش تاکید می کند، معمولا چیز زیاد دیگری ندارد که روی آن تاکید کند. در دفتر رهبر واقعی به روی همه باز است و در ساعات کاریش خبری از تظاهر و تشریفات نیست. این ده مورد از معمول ترین علل شکست در رهبری است. هر یک از این اشتباهات کافی است که به شکست رهبری منجر شود. اگر تمایل دارید رهبر شوید این فهرست را به دقت مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید که این اشتباهات را انجام نمی دهید. بعضی از حوزه های پربار که در آنها رهبری نوین ضرورت دارد. قبل از اینکه این فصل را به پایان ببریم توجه شما را به چند حوزه پربار جلب می کنم که در آنها رهبری تنظل پیدا کرده و در آنها نوع جدیدی از رهبر می تواند به انبوهی از فرصت دست بیابد. نخست در حوزه سیاست نیاز جدی به رهبران جدید وجود دارد، نیازی که فوریست، ظاهرا اکثر سیاستمداران مداران ممتاز و مجاز شدند آنها مالیات را افزایش دادند و ساز و کار صنعت و کسب و کار را به فساد کشاندند، به طوری که مردم دیگر نمیتوانند این بار را تحمل کنند دوم، بانکداری دارد دست خوش اصلاحات می شود رهبران این حوزه اعتماد مردم را تقریبا به طور کامل از دست دادند بانکداران نیاز به اصلاحات را حس کردند و آن را شروع کردند سوم صنعت به رهبران جدید نیاز دارد نوع قدیم رهبران بر اساس سود سهام فکر و حرکت می کردند، نه بر اساس معادلات انسانی رهبری که قرار است در آینده در صنعت رهبری کند باید خود را یک مقام شبه مردمی بداند که وظیفه‌اش آن است که اعتمادی که به او شده است را طوری مدیریت کند که بر هیچ فرد یا گروهی از افراد سختی بیجا وارد نکند استثمار کارگران متعلق به گذشته بود کسی که میخواهد در حوزه تجارت، صنعت و کار به رهبری برسد باید این را به خاطر بسپارد چهارم رهبر مذهبی آینده مجبور خواهد شد به نیازهای دنیوی پیروانش و به حل مشکلات اقتصادی و فردی زمان حال بیشتر توجه کند و به گذشته مرده و آینده هنوز متولد نشده کمتر توجه کند پنجم در حرفه های حقوق، پزشکی و تعلیم و تربیت مدل جدیدی از رهبری لازم خواهد شد. این سخن مخصوصا در حوزه تعلیم و تربیت صدق میکند. رهبران این حوزه باید در آینده راهکارهایی پیدا کنند تا به افراد یاد بدهند چطور دانشی را که در مدرسه یاد میگیرند را به کار ببندند. باید بیشتر به کار بپردازند نه به نظریه. ششم رهبران جدیدی در حوزه روزنامه‌نگاری لازم خواهند بود روزنامه‌های آینده برای اینکه عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند باید بتوانند از شر تبلیغات خلاص شوند البته اینها فقط چند حوزه‌ای هستند که در آنها در حال حاضر فرصت‌هایی برای رهبران جدید و مدل جدیدی از رهبری وجود دارد دنیا دستخوش تغییر سریعی است و این بدان معناست که زمینه برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده می شود چه وقت و چطور باید برای شغل جدید تقاضا کرد؟ اطلاعاتی که در اینجا بیان می شوند نتیجه نهایی سالها تجربه است که در طول آن به هزاران مرد و زن کمک شده است برای خدمات خود به طور اثر بخش بازاریابی کنند بنابراین می توان به این اطلاعات به عنوان اطلاعاتی درست و عملی تکیه کرد. ابزارهایی که با آنها می توان برای خدمات بازاریابی کرد. تجربه ثابت کرده است ابزارهای زیر مستقیم ترین و اثر ترین روش هایی هستند که خریدار و فروشنده خدمات شخصی را به هم مرتبط می کند و کنار هم قرار می دهد. 1. ادارات کاریابی، در انتخاب چنین ادارات معتبری باید دقت کرد. مدیریت آن باید سوابق کافی در کسب موفقیت یا نتایج رضایت بخش داشته باشد. تعداد این ادارات نسبتاً کم است. دو، تبلیغات در جراید تجاری. کسانی که دنبال مشاغل دستمزدی اداری هستند، معمولاً می به تبلیغات سنتی تکه کنند و به نتایج رضایت بخشی برسند. برای کسانی که دنبال کارهای اجرایی هستند، تبلیغات تصویری مطلوبتر است. نسخه ای از این تبلیغات را میتوان در مناسب ترین قسمت روزنامه قرار داد تا به رویت کارفرماهای بالقوه برسد. این تبلیغ باید به وسیله کارشناسی تهیه شده باشد که میفهمد چطور خصوصیات شغلی متقاضی کار را تبلیغ کند تا بازخورد مناسبی دریافت کند. 3. تقاضانامه تقاضا نامه برای شرکت ها یا افراد خاصی ارسال می شود که بیشترین نیاز را به خدمات ارائه شده دارند. نامه ها باید همیشه مرتب و منظم تایپ شوند و به وسیله دست امضا شوند. همراه با این نامه باید خلاصه کاملی از توانایی و قابلیت های تقاضا کننده نوشته شود. هم تقاضانامه نامه و هم خلاصه تجارب یا توانایی باید به وسیله یک کارشناس آماده شود. چهار تقاضا از طریق آشناهای شخصی در صورت امکان تقاضا کننده باید سعی کند از طریق یک آشنایی مشترک به کارفرمایان بالقوه نزدیک شود این روش مخصوصا به نفع کسانی است که دنبال رده های بالاتر شغلی هستند و دوست ندارند این طور نظر برسند که راه افتادند و خودشان را تبلیغ میکنند. 5 شخصا تقاضا کردند در بعضی از موارد اگر تقاضا کننده شخصا خدمات خود را به کارفرمایان بالقوه عرضه کند بهتر است یک گزارش کامل مکتوب هم از توانایی ها و قابلیت ها برای آن مقام ارائه دهد چون کارفرمایان بالقوه غالبا دوست دارند سوابق فرد را با همکاران خود به بحث بگذارند اطلاعاتی که در یک رزومه مکتوب باید آورده شود رزومه باید با دقت تهیه شود درست مثل خلاصه پرونده که یک وکیل برای ارائه در یک دادگاه تهیه می کند اگر تقاضا دهنده در تهیه چنین رزومه ای تجربه نداشته باشد باید با یک کارشناس مشورت کرده و از خدمات او برای این هدف استفاده کند بازرگان موفق مردان و زنانی را استخدام می کند که حداقل هنر و روانشناسی تبلیغات را در ارزیابی توانایی های شخصیشان بلدند اطلاعات زیر باید در رزومه آورده شوند 1. تحصیلات تحصیلات خود را به صورت خلاصه ولی دقیق ویان کنید و اینکه چه چه تخصصهایی دارید و علل تخصصتان را در آن موضوعات ارائه دهید دو، تجربه اگر تجربه موقعیت های شغلی مشابه به آن موقعیت که میخواهید دارید، آن را کاملا توصیف کنید و نام و نشانی کارفرمایان سابقتان را ذکر کنید س. ارجاعات هر شرکت دوست دارد از همه سوابق و پیشینی های قبلی کارکنان بلغوهی که دنبال شغل هستند با خبر شود. کپی نامه های زیر را به رزومه‌تان اضافه کنید. الف، نامه های کارفرمایان قبلی ب، معلم و استادانی که شاگرد آنها بوده اید. جیم، افراد برجستهی که به نظر آنها میتوان تهکی کرد. چهار عکس خودتان یک قطعه عکس جدید خود را به رزومه تان زمیمه کنید پنج درخواست یک شغل خاص بکنید از تغازانامهی که دقیقا شغل خاصی را درخواست نمی کند بپرهیزید هیچ وقت برای هر شغلی تقاضا نکنید اگر چنین تقاضایی بکنید معنی آن این است که شما فاقد توانایی ها و قابلیت های خاص هستید شش توانایی و قابلیت توانایی‌ها و قابلیت‌های شغل خاصی که تقاضا می‌کنید را بیان کنید جزئیات کامل مربوط به اینکه چرا واجد شرایط لازم برای شغل درخواستیتان هستید را ارائه دهید این تقاضا بیش از هر چیز دیگری مشخص خواهد کرد که شما چطور مورد توجه قرار خواهید گرفت هفت، پیشنهاد کار به صورت آزمایشی اگر مطمئن هستید خصوصیات لازم شغلی را که برای آن تقاضا داده اید را دارید، در اکثر موارد در صورتی بیشترین اثر بخشی را خواهد داشت که پیشنهاد کنید به مدت یک هفته، یک ماه یا به مدت کافی به صورت آزمایشی کار کنید تا کارفرمای خود را قادر سازید که بدون دستمزد در مورد ارزش شما قضاوت کند. ممکن است این یک پیشنهاد افراطی به نظر برسد، اما تجربه ثابت کرده است که این پیشنهاد لاقل به عنوان یک آزمایش به ندرت شکست می‌خورد. اتفاقاً چنین پیشنهادی نشان می‌دهد شما به تواناییتان در شغلی که دنبال آن هستید اعتماد کامل دارید. این بسیار متقاعد کننده است. اگر پیشنهادتان پذیرفته شود و شما عملکرد خوبی از خود نشان دهید، به احتمال زیاد شما در قبال دوره آزمایشیتان دستمزد دریافت خواهید کرد. این واقعیت را رو روشن کنید که پیشنهاد همکاری آزمایشی شما بر اساس موارد زیر است. الف اعتمادی که خودتان برای انجام دادن آن شغل دارید B اعتمادتان به تصمیم کارفرمای بلقوه در استخدام شما پس از آزمایش. جیم، عزم جزم شما در به دست آوردن شغلی که می خواهید. هشت، آگاهی از کسب و کار کارفرمای بلقوه قبل از اینکه تقاضای شغلی بکنید، تحقیقات کافی در ارتباط با آن کسب و کار انجام دهید تا کاملاً با آن آشنا شوید و شناختی که در این حوزه کسب کرده اید را به طور خلاصه به کارفرمایتان نشان دهید. این کار تأثیر گذار و چشمیر خواهد بود چون نشان خواهد داد که شما تخیل دارید و به شغلی که دنبال آن هستید واقعاً علاقه دارید. در مقام مثال، به یاد داشته باشید وکیلی که برنده می‌شود وکیلی نیست که بیشترین شناخت را از علم حقوق دارد. بلکه وکیلی است که خلاصه پرونده خود را به بهترین شکل تهیه می‌کند اگر پرونده شما به درستی تهیه و ارائه شود از همان ابتدا بیش از نیمی از پیروزی را کسب خواهید کرد از اینکه خلاصه عمل را خیلی طولانی کنید نترسید کارفرمایان به همان اندازه که شما علاقمندید استخدامتان را قطعی کنید علاقمندند تقاضا دهندگان توانمند و واجد شرایط داشته باشند در واقع موفقیت موفقترین ترین کارفرمایان عمدتا ناشی از توانایی آنها در انتخاب افراد واجد شرایط است پس آنها همه اطلاعات موجود را نیاز خواهند داشت یک نکته دیگر را به یاد داشته باشید پاکیزگی در رزومه نشان خواهد داد که شما یک فرد دقیق و زحمتکش هستید من کمک کردم تا رزومه هایی برای مراجعانم تهیه کنم که بعضی از آنها چنان چشمگیر فوق العاده بودند که منجر به استخدام تقاضا دهنده شدند حتی بدون اینکه برای او مصاحبه ای صورت بگیرد. وقتی رزومهتان تکمیل شد آن را به یک صحاف با تجربه بسپارید و بخواهید یک هنرمند یا چاپخانهدار نام، شغل درخواستی شما و شرکت مورد نظرتان را روی آن حروف چینی کنند. هر بار که رزومه به جای دیگر نشان داده می شود اسم را تغییر دهید این سبک شخصی قطعا مورد توجه قرار می گیرد خلاصه سوابقتان را مرتب و منظم تایپ کنید یا بدهید روی نازک ترین کاغذ موجود کپی شود و سپس آن را با یک جلد سخت صحافی کنید و اگر قرار است آن به بیش از یک شرکت نشان داده شود جلد آن را عوض کنید و نام صحیح شرکت را در آن درج کنید عکستان باید بر روی یکی از صفحات رزومه تان چسبیده شود. دستور و را به دقت دنبال کنید و هر جا تخیل تان اجازه می دهد آن را بهتر کنید فروشندگان موفق خودشان را با دقت تر و تمیز می کنند و آراسته هستند آنها می فهمند که اولین برخوردها در اولین ملاقاتها ماندگار هستند خلاصه سوابقتان مثل فروشنده شخصی شماست یک دست لباس خوب به او بپوشانید تا در مقایسه با هر چیزی که کارفرمای میبیند چشمگیر و برجسته باشد. اگر شغلی که دنبال آن هستید ارزش دارد که به آن دست پیدا کنید، پس ارزش دارد که به دقت دنبال آن باشید. علاوه بر این، اگر طوری خودتان را به یک کارفرما عرضه کنید که او را با فردیتتان تحت تأثیر قرار دهید، احتمالا در مقایسه با یک استخدام معمولی از همان ابتدا پول بیشتری در قبال خدماتتان دریافت خواهید کرد. اگر از طریق یک بنگاه تبلیغاتی یا یک مؤسسه کارگابی دنبال کار هستید، کپی مدارک و سوابقتان را با آن بنگاه یا موسسه بدهید تا از آنها برای معرفی شما به کارفرمایان بلقوه استفاده کنند. این کار به شما کمک خواهد کرد تا هم از نظر آن موسسه یا بنگاه و هم از نظر کارفرمایان بلقوه ارجحیت یابید. چطور باید شغل مورد نظرتان را به دست بیاورید؟ هر کسی از آن نوکاری که بیشترین تناسب را با او دارد لذت میبرد، یک نقاش دوست دارد با رنگ ها کار کند، یک هنرمند دوست دارد با دستانش کار کند، یک نویسنده دوست دارد بنویسد. کسانی که استعدادهای سعیال دارند کسب و کار و صنعت را ترجیح می دهند. نخست دقیقاً تصمیم بگیرید که چه نوع شغلی میخواهید. اگر آن شغل هنوز به وجود نیامده است، شاید شما بتوانید خالق آن شغل باشید. دوم، شرکت یا فردی که دوست دارید برای آن کار کنید را انتخاب کنید. سوم، کارفرمای بالقوه را از لحاظ خط مشی کاری، پرسنل و امکان پیشرفت و ترقی بررسی کنید. چهارم، با تحلیل استعدادها و توانمندیهایتان، ببینید چه چیزی را می توانید ارائه دهید سپس برای انجام ایده هایی که باور دارید می توانید با موفقیت اجرا کنید برنامه ریزی کنید پنجم شغل را فراموش کنید یعنی این را فراموش کنید که آیا روزانه هست یا نیست روکرد معمول آیا شغلی دارید که به من بدهید را فراموش کنید روی اینکه چه ارزشی می توانید فراهم کنید تمرکز کنید ششم همینکه برنامهایی در ذهنتان به انسجام رسید با یک نویسندهی با تجربه مشورت کنید و برنامه را به شکل پاکیزه و مرتب و منظم و به صورت مفصل و جزء به جزء و دقیق بر روی کاغذ بیاورید. هفتم برنامه را به فرد مناسبی که قدرت اجرا دارد کنید تا او بقیه کارها را انجام دهد. هر شرکتی دنبال افرادی است که میتوانند چیز ارزشمندی، ایده ها، خدمات یا رابطه ها را ارائه دهند. هر شرکتی برای کسی که برنامه عملی مشخصی به نفع شرکت داشته باشد، جا دارد. این رویه می تواند چند هفته بیشتر طول بکشد، اما تفاوت در درآمد، پیشرفت و به رسمیت شناخته شدن باعث خواهد شد از سالها کار سخت و دستمزد کم کاسته شود. این کار مزایای فراوانی دارد. مزیت اصلی آن این است که به مدت یک تا پنج سال از زمانی که برای رسیدن به هدف انتخاب شده لازم است میکهد. همه افرادی که به نظر می رسد یک شب ساله طی کردند این کار را با برنامه ریزی انجام دادند. راه جدید برای بازاریابی خدمات، شغلها در حال حاضر مشارکت هستند. مردان و زنانی که خدمتشان را در بازار کار عرض می کنند باید تغییر حیرت انگیزی که در مورد رابطه بین کارکنان و کارفرمایان داده است را در نظر بگیرند. این تغییر عبارت است از گذار از رابطه کارفرما کارکنان به یک مشارکت سه طرفه میان کارکنان، کارفرما و عموم مردمی که به آنها خدمت رسانی می شود یعنی همان مشتریان. این روش جدید بازاریابی خدمات به دلایل متعددی یک روش جدید نامیده می‌شود. نخست اینکه همکارفرما و همکارکنان آینده به عنوان همکار و همرده تلقی خواهند شد و کار آنها این خواهد بود که به صورت کارآمد به مشتریان خدمت رسانی کنند. در زمانهای گذشته کارفرمایان و کارکنان بین خودشان چانهزنی می می‌کردند و بهترین معامله هایی که می‌توانستند را با یکدیگر انجام می‌دادند. و در نهایت به این نکته توجه نمی که آنها دارند در واقع به حزینه شخص سوم یا همان مشتریان معامله می کنند. رکود اقتصادی به عنوان اعتراض قدرتمندی از سوی عموم مردم آسیب دیده و یا مشتریان عمل می کرد. عموم مردمی که حقوقشان از سوی کسانی که برای گرفتن امتیازات و منافع فردی داد و بیداد راه میانداختند مورد تعدی قرار گرفته بود. وقتی اثرات رکود اقتصادی کنار روند و کسب و کار به حالت تعادل برگردد هم کارکنان و هم کارفرمایان متوجه خواهند شد که آنها دیگر حق ندارند به هزینه کسانی که به آنها خدمت رسانی می کنند، معامله کنند کارفرمای واقعی آینده عموم مردم خواهند بود حداقل یکی از علل ورشکستگی شرکت های راه آهن و تاکسیرانی که بی‌ادبی و خارش مردن مشتری را سرلوحه کرده بودند بیتوجهی به همین اصل است. زمانه بسیار تغییر کرده است. این نکته است که من سعی می کنم روی آن تأکید کنم. زمان تغییر کرده است. تغییر نه تنها در راه آهن و تاکسیرانی بلکه در دیگر بخش های زندگی نیز باستاب پیدا می کنند. دوران سیاست لعنت بر مردم دیگر سپری شده است و سیاست ما برای کمک به شما در خدمت شما هستیم جایگزینان آن شده است. بانکداران هم در طول این تغییر سریعی که در طول 5 سال گذشته روی داده است یک یا دو چیز یاد گرفتند. امروزه بیادبی از ناحیه یک مقام بانکی یا یک کارمند بانک بسیار نادر است اما حدود ده سال پیش بسیار فراوان بود. در سالهای گذشته بعضی از بانکداران البته نه همه آنها چنان حالت ای داشتند که هر کسی که میخواست وامی از بانک بگیرد حتی وقتی به فکر نزدیک شدن به با آن بانکدار می‌افتاد، عقب میکشید. امروزه احترام و خدمت به مشتری کلمات کلیدی کسب و کار است و بیشتر در مورد کارکنان صدق میکند تا کارفرمایی که به او خدمت میکند. چون در ارزیابی نهایی هم کارفرما و هم کارکنان به وسیله عموم مردمی که به آنها خدمت می کنند یعنی مشتریان ارزیابی می شوند اگر آنها خوب خدمت نکنند امتیاز خدمتگذاری از هر دو آنها گرفته می شود و بدین ترتیب هزینه این بد خدمت کردن را میدهند ما می زمانی را به یاد بیاوریم که معمور قرائت کنتور آب و گاز چنان محکم بر در می کوبید که نزدیک بود در را بشکنند وقتی در باز میشد، بدون دعوت و با اخم و تخم وارد خانه میشد و با ی طلبکارانه و محترس کارش را انجام میداد. اینها همه تغییر کردند مأمور کنترل گاز حالا رفتار یک فرد محترم را دارد و از اینکه در خدمت شما باشد خوشحال است دوره رکود اقتصادی نمیتواند فقط یک اتفاق باشد دوره رکود یک علت دارد و هیچ اتفاقی بدون علت روی نمی دهد. در اصل، علت رکود اقتصادی را می توان در عادت گسترده تلاش برای برداشت کردن بدون کاشتن دنبال کرد. در واقع، جامعه ما بذر کمکاری و عدم کیفیت را کاشت و رکود اقتصادی را برداشت کرد. این نکته باید مورد توجه کسانی باشد که خدمات شخصی به بازار ارائه می دهند تا نشان دهند که هر کسی هرچه بکارد درو می کند. اگر اصول علت و معلولی، کسب و کار، امور مالی و حمل و نقل را کنترل می کند، همین اصل افراد را کنترل می کند و موقعیت اقتصادیشان را تعیین می کند. اندازه کیفیت، کمیت و روحیه شما چقدر است؟ علل موفقیت اثربخش و دائمی در بازاریابی خدمات در اینجا به روشنی توصیف شده است. اگر آن دلایل مطالعه تحلیل شناخته و عمل نشوند، هیچ کس نمیتواند خدمات خود را به صورت اثر بخش و دائمی بازاریابی کند هر کسی باید فروشنده خدمات شخصی خودش باشد کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده و روحیه‌ای که با آن ارائه می شوند تا حد زیادی قیمت و تداوم استخدام و کار را تعیین کند. فرد برای اینکه خدمات شخصی را به طور اثر بخش بازاریابی کند باید فرمول کیفیت کمیت روحیه را به کار گیرد و آن را دنبال کند این فرمول بدان معناست است که کیفیت به اضافه کمیت به اضافه روحیه درست همکاری برابر است با فروش کامل خدمات فرمول کیفیت کمیت روحیه را به یاد بیاورید ولی بیشتر عمل کنید آن را مثل یک عادت به کار بگیرید بیایید این فرمول را تحلیل کنیم تا اطمینان حاصل کنیم معنای آن را دقیقا درک میکنیم یک کیفیت خدمات باید به معنای عملکرد همه جزئیات در اثر بخشترین حالت ممکن باشد و همیشه کارایی بیشتر مد نظر فرد باشد. دو، کمیت خدمات باید به معنای آن باشد که فرد عادت کرده است همه خدماتی را که از او برمیآید همیشه و با هدف افزایش مقدار خدمت ارائه شده ارائه دهد و در عین حال مهارت بیشتری با تمرین و تجربه کسب کند. دوباره تاکید بر روی کلمه عادت است. 3. روحیه خدمت به معنای عادت به انجام رفتار دلپذیر و هماهنگی است که موجب همکاری همه کارکنان باشد برای حفظ یک بازار جائمی برای خدماتتان کیفیت و کمیت خدمت کافی نیست رفتار یا روحیه که با آن خدمت می‌کنید عامل تعیین‌کننده نیرومندی در تعیین درآمد دریافتی و مدت استخدامتان است اندرو کارنگی بیش از دیگران روی عواملی که منجر به موفقیت در بازاریابی خدمات شخصی می‌شود تاکید داشت او دوباره و دوباره بر لزوم رفتار هماهنگ تاکید کرد او بر این واقعیت تاکید کرد که فارغ از کمیت کار یک فرد و کیفیت کارش هرچقدر هم زیاد و کارآمد باشد اگر با روحیه مبتنی بر هارمونی و هماهنگی کار نکند ادامه همکاری با وی ممکن نیست آقای کارنگی بر این اصرار داشت که افراد باید دلپذیر و خوش برخورد باشند او برای اینکه ثابت کند ارزش بالایی به این خصیصه رفتاری می دهد اجازه داد بسیاری از کسانی که با معیارها و استانداردهای او هماهنگ و همراه بودند بسیار ثروتمند شوند کسانی که هماهنگی نکردند مجبور بودند جا را برای دیگران باز کنند بر اهمیت یک شخص دلپذیر تاکید شد چون این عاملی است که فرد را قادر میسازد خدمت را با روحیه خوب دهد. اگر کسی شخصیتی داشته باشد که دلپذیر باشد و خدمت را با روحیه مبتنی بر هارمونی ارائه دهد این خصیصه مثبت غالبا کمبود کیفیت و کمیت خدمتی که فرد ارائه می‌دهد را جبران می‌کند هیچ چیز را نمی‌توان به طور موفقیت آمیزی جایگزین رفتار دلپذیر کرد ارزش سرمایه‌ای خدمات شما فردی که درآمدش کاملا از فروش خدمات شخصی حاصل می‌شود مانند تاجری است که کالا می فروشد و باید اضافه کرد چنین فردی درست مثل تاجری که کالا می فروشد همان قوانین رفتاری است. بر این نکته تاکید شده است چون اکثریت افرادی که به وسیله فروش خدمات شخصی زندگی می کنند این اشتباه را می کنند که خودشان را از قوانین رفتاری و مسئولیت های مربوط به کسانی که در بازاریابی برای کالاها مشغول کار هستند آزاد می بینند. شیوه جدید بازاریابی برای خدمات عملا کارفرما و کارکنان را متحد می کند و به دین وسیله هر دو به حقوق شخص سالسی یعنی همان مشتری توجه می کند اصر جاه به سر آمده اصر بخشش جایگزین آن شده است روش های مبتنی بر فشار زیاد در کسب و کار بالاخره به سر آمدند هیچگاه نیازی به برگشت این روش ها وجود نخواهد داشت چون کسب و کار در آینده به وسیله روش هایی انجام خواهد شد که فشاری نیاز نخواهد داشت. یک روش البته غلط برای برآورده ارزش ذهن شما با فرض نرخ بهره 6 درصد، ضرب درآمد تان در 16 و دو سوم خواهد بود. با این کار کل پولی که توسط ذهن شما تولید می شود ارزش گذاری می شود. این در حالی است که ذهن توانمند اگر به طور سمروخش بازاریابی شود و با پول ترکیب شود، ارزش بسیار بالاتری از سرمایه دارد. چون ذهن شکلی از سرمایه است که مستحلک و دزدیده نمی شود و با مصرف پایان نمی آبد. پولی که برای انجام کسب و کار ضروری است تا زمانی که با ذهن کارآمد در آمیخته نشده باشد مثل شنی بی ارزش است. سی علت اصلی شکست چند مورد از این الل شما را عقب نگه می‌دارند بزرگترین تراژدی زندگی مردان و زنانی هستند که با جدیت تلاش می‌کنند و شکست می‌خورند این تراژدی اکثریت غریب به اتفاق افراد را شامل می‌شود در حالی که تعداد قلیلی هستند که موفق می‌شوند من این امتیاز را داشتم که چندین هزار زن و مرد را تحلیل کنم. از این تعداد، 98 درصدشان به عنوان افراد ناکام یا شکست خورده طبقه بندگی می شوند. تمدن و نظام آموزش و پرورش قطعا مشکلی دارد که اجازه می دهد 98 درصد از افراد در طول زندگی ناکام بمانند و شکست بخورند. اگر من این کتاب را در مورد مشکلات تمدن و آموزش و پرورش می نوشتم، حجم چنین کتابی صد برابر حجم این کتاب میشد. کار تحلیلی من ثابت می کند که شکست سی علت اصلی دارد و سیزده اصل اساسی وجود دارد که مردم از طریق آنها ثروتمند می شوند. در این فصل، توصیفی از سی علت شکست ارائه خواهد شد. همچنان که با این فهرست پیش می روید، خودتان ران را نکته به نکته چک کنید تا بدانید که چه تعداد از این علل مانع از آن می شوند که شما موفق و کامیاب شوید. یک زمینه ارسی نامطلوب برای کسانی که با یک اختلال یا نقص در قدرت مغزی به دنیا می آیند، کار زیادی نمی توان کرد. این افراد، تنها به کمک خدمات دیگران می میتواند شرایط خود را بهتر کنند. با این حال توجه داشته باشیم که این تنها علت از علل سیگانه شکست است که نمیتوان آن را اصلاح کرد. دو، فقدان یک هدف مشخص و معین در زندگی برای کسی که هیچ هدف مرکزی یا هدف معینی وجود ندارد که به آن حرکت کند، امید موفقیت چندانی وجود نخواهد داشت. از هر صد نفری که من تحلیل کردم 98 نفرشان فاقد هدف مشخصی بودند. 3. فقدان بلندپروازی برای رسیدن به چیزی بالاتر از سطح معمول. کسانی که بی تفاوتند و نمیخواهند در زندگی پیشرفت کنند و هزینه لازمه را بپردازند، امیدی برای موفقیت ندارند. 4. تحصیلات ناکافی. این نقصی است که با سهولت نسبی میتوان بر آن فائق آمد. تجربه ثابت کرده است که عالمترین مردم غالباً کسانی هستند که به خودساختگی ساختگی یا خداوختگی معروف هستند برای اینکه فردی تحصیل کرده شود یک مدرک دانشگاهی کافی نیست کسی که تحصیل کرده باشد کسی است که یاد گرفته است هرچه را در زندگی میخواهد به دست آورد بدون اینکه به حقوق دیگران تجاوز کند تحصیلات بیشتر یعنی دانشی که به صورت اثر بخش و دائمی به کار گرفته شود، نه داشتن یک سری معلومات. افراد نه در قبال حجم معلوماتشان، بلکه مخصوصا در قبال آنچه با دانسته هایشان انجام میدهند دستمزد دریافت میکنند. می کنند. 5. فقدان انضباط فردی انضباط از طریق خودکنترلی حاصل می شود این بدان معنی است که فرد قبل از اینکه تواند شرایط را کنترل نماید باید همه خصوصیات منفی را کنترل کند تسلط بر خیشتن سخت ترین کاری است که شما با آن مواجه خواهید شد اگر شما بر خودتان غلبه نکنید خودتان بر شما غلبه خواهد کرد ممکن است وقتی جلوی آینه می استید، در آن واحد بهترین دوست و بزرگترین دشمنتان را ببینید 6 بیماری لذت بردن از موفقیت بدون سلامت جسم ممکن نیست. بسیاری از علل عدم سلامتی با انضباط فردی قابل کنترل هستند. آن علل اصلی به شرح زیرند. الف پرخوری و مصرف غذاهای ناسالم. ب عادات غلط فکری و بیان چیزهای منفی. جیم، استفاده غلط از آمیزش جنسی یا زیاده روی در آن دال ورزش نکردن. ه. استنشاق ناکافی هوای تازه به دلیل مشکلات تنفسی. هفت. تأثیرات نامطلوب محیط در طول دوره زندگی. شاخه کوچک کم کم بزرگ می شود و درخت می شود. گرایش های افراد غالبا نتیجه محیط و همنشینان بد در طول دوره کودکی است. 8 به عقب انداختن کارها این یکی از شایع ترین علل شکست است. آدم پیر کارها را به عقب می اندازد. و این در مورد اکثر افراد صدق می کند و انسان آنقدر منتظر زمان مناسب می شود تا اینکه شانس موفقیت خود را از دست می دهد. بسیاری از ما به این خاطر در زندگی شکست میخوریم که منتظر زمان مناسب می شویم تا کار ارزشمندی را شروع کنیم، منتظر نشوید. هیچ وقت زمان مناسب فرا نخواهد رسید. از هر جایی که هستید شروع کنید و هر وسیله‌ای که در دست دارید را به کار گیرید. همچنان که پیش می روید وسایل بهتر پیدا خواهند شد. 9. فقدان پشتکار ما اکثرا در هر کاری که آغاز می کنیم، شروع کننده های خوب و تمام کننده های بدی هستیم. علاوه بر این، افراد گرایش دارند که با دیدن اولین علایم شکست، دست از کار بکشند پشت کار هیچ جایگزینی ندارد کسی که شعارش پشت کار باشد متوجه خواهد شد که بالاخره این شکست است که خسته و ناامید می شود و راه خود را می گیرد و می رود شکست نمی تواند از عهده پشت کار برآید. ده شخصیت منفی برای کسی که با شخصیت منفیش افراد را از خود می راند، امید موفقیتی وجود ندارد موفقیت در نتیجه بکارگیری قدرت حاصل می شود و قدرت از طریق تلاشهای های مشارکتی دیگران به دست می آید. شخصیت منفی مشارکت را بر نخواهد انگیخت و قدرت نخواهد یافت و موفق نخواهد شد. یازده عدم کنترل میل جنسی انرژی جنسی قوی ترین است که افراد را به حرکت وامیدارد می از اونجایی که قویترین هیجان است باید از طریق تبدیل کنترل شود و به کانال‌های دیگری منتقل شود. دوازده، میل کنترل نشده ی دریافت چیزی در مقابل دادن هیچ چیز. غریزه که قماربازی یعنی دریافت چیزی در مقابل دادن هیچ چیز میلیون‌ها نفر را به شکست می‌کشاند. پژوهشی که در مورد سقوط قیمتها در والستیریت در سال 1929 انجام شد، نشان داد در این مدت میدیونها نفر سعی می با قمار کردن بر روی سودهای سهام پول به دست آورند. 13. فقدان قدرت مشخص تصمیم گیری. کسانی که موفق می شوند سریع تصمیم می و تصمیمشان را خیلی آهسته تغییر می دهند. افرادی که شکست می‌خورند اگر تصمیم بگیرند خیلی آهسته تصمیم می‌گیرند و تصمیمشان را مکررن و به سرعت تغییر می‌دهند تصمیم نگرفتن و عقب انداختن کارها برادران قلو هستند وقتی در شخصی یکی یافت شود دیگری نیز معمولاً یافت می شود. قبل از اینکه آنها دست و پای شما را کاملاً در بند شکست ببندند یکی از آنها را نابود کنید چهارده یک یا چند ترس از ترس های ای اساسی این ترس ها برای شما در فصل بعدی تحلیل شده است قبل از اینکه بتوانید به طور اثر بخش برای خدمتتان بازاریابی کنید باید بر آنها مسلط شوید. پانزده انتخاب نادرست همسر در ازدواج این شایه ترین علت شکست است ازدواج افراد را خیلی به هم نزدیک می کند اگر این رابطه هماهنگ نباشد احتمال دارد به شکست بیانجامد. علاوه بر این این شکست شکلی از شکست است که مشخصه ی آن فلاکت و بدبختی و ناراحتی است و همهی علائم بلند پروازی را نابود می کند. 12. احتیاط بیش از حد. کسی که هیچ ریسکی نمی کند معمولا باید آنچه پس از انتخاب دیگران باقی می ماند را بپذیرد. احتیاط بیش از حد به اندازه احتیاط کمتر از حد بد است هر دو افراد و هستند و باید در مقابل آنها مقاومت کرد خود زندگی پر از بخت و شانس است هفده انتخاب اشتباه همکاران و معاشران در کسب و کار این یکی از شایه علل شکست در کسب و کار است در بازاریابی برای خدمات شخصی، فرد باید دقت فراوانی به خرج بدهد تا کارفرمایی را انتخاب کند که الهام بخش و خودش باهوش و موفق باشد. ما از کسانی تقلید می کنیم که با آنها بیشتر معاشرت داریم. کارفرمایی را برگزینید که ارزش تقلید کردن را داشته باشد. 18. خرافات و تعصف. خرافات شکلی از ترس است. نشانه نادانی نیز هست. کسانی که موفق می ذهنشان را باز نگه میدارند و از هیچ چیز نمی ترسند. 19. انتخاب غلط حرفه هیچکس نمیتواند در کاری که دوست ندارد موفق شود. مهمترین گام در بازاریابی خدمات شخصی انتخاب شغلی نیست که بتوانید خودتان را با تمام وجود و کنید. 20. عدم تمرکز تلاش آدم همه کاره و هیچ کاره در هیچ کاری مهارت ندارد. همه ی تلاشتان را رو روی یک هدف اصلی و مشخص متمرکز کنید. 21. عادت خرج کردن بی حساب و کتاب آدم ویل خرش نمی تواند موفق شود و علت اصلی آن این است که همیشه در معرض فقر است. عادت کنید به طور سیستماتیک پسانداز کنید. به این صورت که درصد مشخصی از درآمدتان را کنار بگذارید. پولی که فرد در بانک دارد مبنای بسیار مطمئنی برای جرأت نمودن در زمان چزنی برای فروش خدمات شخصی است. اگر کسی پول نداشته باشد باید هرچه به او میدهند را بپذیرد و از آن راضی باشد. 22. عدم اشتیاق اگر کسی اشتیاق نداشته باشد نمی تواند متقاعد کننده باشد. علاوه بر این اشتیاق مصری است و فردی که اشتیاق دارد عموما در هر گروهی از او استقبال می‌شود. 23 ناشکیبایی کسی که در هر موضوعی ذهنی بسته داشته باشد پیشرفت نمی‌کند. ناشکیبایی به این معناست که فرد از کسب دانش و آگاهی دست برداشته است. آسیبزاترین شکل‌های ناشکیبایی شکل‌هایی هستند که به اختلاف نظرهای مذهبی، نژادی و سیاسی مربوط باشند. 24. زیاد روی آسیب زادترین شکل زیاد روی به غذا خوردن، فعالیت های جنسی و مصرف مشروبات الکلی مربوط می شود. زیاد روی در هر یک از اینها برای موفقیت مهلک است. 25. ناتوانی در همکاری با دیگران در مقایسه ترکیب همه علل بیشتر افراد به این خاطر یعنی ناتوانی در همکاری با دیگران موقعیت‌ها و فرصت‌های بزرگشان را از دست می‌دهند هیچ کاسب یا رهبری این خصیصه را تحمل نخواهد کرد 26 ثروت بادآورده یا کسب ثروتی که از طریق تلاش خود فرد حاصل نشده باشد پسران و دختران افراد ثروتمند و دیگرانی که پولی را به ارث میبرند که خودشان آن را به دست نیاوردند. قدرت در دستان کسی است که آن را به تدریج به دست آورده است ثروتی که به سرعت به دست آمده باشد غالبا از فقر خطرناکتر است 27 دغل‌بازی صداقت هیچ جایگزینی ندارد ممکن است فردی به اجبار شرایطی که هیچ کنترلی روی آنها ندارد به صورت موقت دقلکاری کند بدون اینکه آسیبی دائمی وارد آورد. اما برای کسی که عمدن دقلکاری می کند امیدی نیست. دیر یا زود چوب کارهایش را خواهد خورد و اعتبار و حتی شاید آزادیش را به خاطر این کار از دست می دهد. 28. خودخواهی و تکبر این خصوصیات به عنوان چراغهای قرمزی عمل می کنند و به دیگران هشدار میدهد که از شخص خودخواه یا متکبر فاصله بگیرند. این خصوصیات برای موفقیت مهلک هستند. 29. حد زدن به جای فکر کردن. اکثر افراد آنقدر بی تفاوت یا تنبل هستند که داده های لازم را کسب نمی کنند تا به کمک آنها به درستی فکر کنند. آنها ترجیح می‌دهند بر اساس نظرات حاصل از حدس و گمان عمل کنند. سی، نبود سرمایه. این علت شایع شکست در میان کسانی است که کسب و کارشان را برای اولین بار شروع می‌کنند و ذخیره سرمایه کافی برای رفع شوک حاصله از اشتباهاتشان را ندارند و این اشتباهات اعتبار آنها را از بین می‌برد. 31، علت‌های دیگر. هر علل خاص دیگری که باعث شکست شما شده است و در فهرست فوق نیامده، آنها را در اینجا بگنجانید. در این سی علت اصلی شکست توصیفی از تراژدی زندگی یافت می شود که عملا برای هر کسی که سعی می کند و شکست می خورد، وجود دارد. فردی که شما را خوب می شناسد را وادار کنید، این فهرست را با شما مرور کند و کمک کند تا شما را از منظر سی علت شکست تحلیل نماید. اگر خودتان همین کار را به تنهایی انجام دهید، شاید مفید باشد. ولی اکثر افراد نمی توانند خودشان را آنطور ببینند که دیگران آنها را می بینند. شاید شما همینطور طور باشید. قدیمی ترین پند این است. ای انسان، خودت را بشناس. اگر شما برای کالایی به صورت موفقیت آمیز بازار یابی کنید، باید آن کالا را بشناسید. همین سخن در مورد بازاریابی برای خدمات شخصی نیز صدق می کند. شما باید همه ی نقاط ضعفتان را بشناسید تا یا شکاف آنها را پر کنید یا آنها را کاملا برطرف کنید. شما باید نقطه قدرتتان را بشناسید تا وقتی خدمتتان را می فروشید، توجه مخاطب را به آنها جلب کنید. شما فقط از طریق تحلیل صحیح می توانید خودتان را بشناسید. عدم شناخت خویشتن در داستان مرد جوانی نمود پیدا می کند که از مدیر یک شرکت مشهور درخواست کار کرد. او خود را خیلی خوب نشان داد و مدیر شرکت از او پرسید چه دستموزی را انتظار دارد؟ او جواب داد که هیچ عدد ثابتی به ذهنش نمی رسد این یعنی نداشتن هدف مشخص. سپس مرد جواب داد: بعد از اینکه به مدت یک هفته کار تو را امتحان کردیم، آن وقت هر چقدر ارزش داشته باشی به تو حقوق می دهیم. مرد جوان جواب داد قبول نمی کنم چون دستمزدی که فعلا در جای دیگر می گیرم خیلی بیشتر است قبل از اینکه حتی برای تعدیل دستمزدتان در موقعیت فعلیتان وارد مذاکره شوید یا دنبال کاری در جای دیگر باشید مطمئن باشید که بیش از آنچه دریافت می کنید ارزش دارید پول خواستن یک چیز است همه افراد پول بیشتری می میخواهند ولی ارزش بیشتر داشتن چیزی است کاملا متفاوت خیلی ها خواستهشان را با مطالبات به حقشان اشتباه میگیرند. نیازها یا خواسته های مالی شما هیچ ربطی به ارزشتان ندارد. ارزش شما کاملا از روی تواناییتان در ارائه خدمت مفید یا تواناییتان در برانگیختن مشارکت دیگران به انجام چنان خدمتی تعیین می شود. خودتان را حسابرسی سالیانه کنید. 28. سوالی که باید جواب دهید. خودکاوی سالانه در بازاریابی اثربخش برای خدمات شخصی ضرورت دارد درست مثل صورتحساب سالیانه در بازرگانی. علاوه بر این تحلیل سالیانه باید کاهش معایب و افزایش محاسن را نشان دهد. آدم در زندگی جلو می رود، ساکن میستد و یا به عقب می رود البته هدف شما باید این باشد که به جلو بروید خودکاوی سالانه نشان خواهد داد که آیا پیشرفت کرده اید و اگر کرده اید چقدر بوده است. همچنین گام هایی که به عقب برداشته را نشان خواهد داد. بازاریابی اثر بخش خدمات شخصی مستلزم آن است که فرد به سمت جلو حرکت کند حتی اگر پیشرفت او کند باشد. خودکاوی سالیانه باید در پایان هر سال انجام گیرد تا به بهبودهایی را که تحلیل نشان می دهد در تصمیمات سال نو صورت عمل به خود گیرد از خودتان سؤال زیر را بپرسید و پاسخهایتان را به کمک کسی که به شما اجازه نخواهد داد خودتان را گول بزنید بررسی کنید پرسش های خودکاوی پرسش اول آیا به چیزی که امسال به عنوان هدف تعیین کردم رسیدم شما باید با هدف مشخص سالیانه ای که به عنوان بخشی از هدف اصلی زندگیتان حساب می شود کار کنید. پرسش دوم آیا من خدمتی با بهترین کیفیت که قادر به انجام آن بوده ام را ارائه داده ام یا می توانستم بخشی از آن خدمت را بهبود بخشم؟ پرسش سوم آیا خدمتی با بهترین کمیت که قادر به انجام آن بوده ام را ارائه داده ام؟ پرسش چهارم آیا روحیه رفتاریم هم همیشه هماهنگ و مشارکتی بوده است؟ پرسش پنجم آیا با عقب انداختن کارها کارایی خود را کاهش دادم و میزان آن تا چه حد بوده است؟ پرسش ششم آیا شخصیتم را بهبود بخشیدم و اگر بهبود بخشیدم از چه لحاظ چنین کردم؟ پرسش هفتم آیا در دنبال کردن برنامه هایم آنقدر پشت کار داشتم که آنها را تکمیل کنم؟ پرسش 8. آیا در همه موارد به سرعت و با قطیت تصمیم گیری کردم؟ پرسش نهم: آیا اجازه دادم یک یا چند ترس اصلی کارایم را کاهش دهد؟ پرسش دهم: ده آیا بیش از حد یا کمتر از حد احتیاط کردم؟ پرسش 11. آیا رابطه من با همکارانم در محل کار پسندیده بوده است یا خیر اگر ناپسند بوده است آیا من اندکی مقصر بودهام یا کاملا پرسش دوازدهم آیا انرژیم را به خاطر عدم تمرکز تلاش تلف کردم پرسش سیزدهم آیا در ارتباط با همه زیردستانم روشنبین و شکیبا بودم پرسش 14 از چه لحاظ تواناییم را در ارائه خدمات بهبود بخشیدم؟ پرسش پانزدهم، آیا در آدات هم زیاده روی کردم؟ پرسش شانزدهم، آیا خودخواهی را آشکارا یا پنهانی نشان دادم؟ پرسش 17 آیا رفتار من با همکارانم طوری بوده که آنها را وادار کرده باشد تا به من احترام بگذارند؟ پرسش هجده آیا نظرات و تصمیمات من بر اساس حد بوده است یا بر اساس صحت تحلیل و فکر؟ پرسش آیا من عادت برنامه ریزی در وقت و حزینه و بودجه و درآمدم را دنبال کردم و در این برنامه ریزی ها محافظه کار بودم؟ پرسش چه چقدر وقت صرف تلاش بیفایده کردم که میتوانم از آن برای کسب امتیاز بهتری استفاده کنم؟ پرسش بیست و یکم، چطور میتوانم وقتم را دوباره برنامه ریزی کنم و عاداتم را تغییر دهم تا در سال آینده کارآمدتر شوم. پرسش بیست و دوم، آیا من مرتکب رفتاری شدم که مورد تأیید وجدانم نبوده است؟ پرسش بیست و سوم از چه لحاظهایی خدمتی بیشتر و بهتر از آنچه در ازایان دست مزمی گیرم ارائه دادم؟ پرسش بیست و چهارم، آیا در حق کسی بیانصافی کردم و اگر کردم از چه لحاظ بوده است؟ پرسش بیست و پنجم، اگر من خریدار خدمات خودم بودم، آیا از خریدم راضی بودم؟ پرسش بیست و ششم، آیا شغل مناسبی دارم و اگر ندارم علت چیست؟ پرسش بیست و هفتم، آیا خریدار خدمات من از خدمتی که من به ایشان ارائه ام راضی است؟ و اگر راضی نیست، علت چیست؟ پرسش 28: رتبه فعلی من از لحاظ اصول بنیادی موفقیت چیست؟ این رتبه بندی را منصفانه و صریح انجام دهید و یا به کسی آن را انجام دهد که شجاع است و درست کار. بعد از مطالعه و جذب اطلاعاتی که در این فصل ارائه شد، حالا آماده اید برنامه عملی برای بازاریابی و خدمات شخصی خود ارائه دهید. در این فصل توصیف کافی در مورد هر اصلی که برای برنامه ریزی به منظور فروش خدمات شخصی ضرورت دارد ارائه شد از جمله خصوصیات اصلی رهبری، شایعترین علت شکست در رهبری، توصیف زمینه های فرصت برای رهبری، علل اصلی شکست در همه عرصه‌های زندگی و سؤالات مهمی که باید در خودکاوی مورد استفاده قرار گیرد توصیف گسترده و مفصل اطلاعات ارائه شده است چون همه کسانی که باید با بازاریابی برای خدمات شخصی ثروت جمعآوری کنند به آن نیاز دارند. یعنی کسانی که ثروتشان را از دست داده یا کسانی که تازه شروع کردند به پول درآوردن و برای کسب ثروت چیزی ندارند جز ارائه خدمات شخصی. بنابراین ضروری است که اطلاعات کاربردی که برای بازاریابی، برای خدمات به بهترین شکل نیاز است را در دسترس خود داشته باشند اطلاعاتی که در این فصل گنجانده شدند برای همهی کسانی که آرزو دارند در کار یا حرفهشان به رهبری برسند بسیار ارزشمند خواهد بود مخصوصا برای کسانی مثل مدیران تجاری یا صنعتی که هدفشان وازاریابی برای خدمتشان است مفید است جذب و درک کامل اطلاعاتی که در اینجا ارائه میشود در بازاریابی برای خدمات شخصی مفید خواهد بود و به فرد کمک خواهد کرد قدرت تحلیل بیشتری پیدا کند و قادر باشد در مورد افراد بهتر و دقیقتر قضاوت کند این اطلاعات برای مدیران منابع انسانی مدیران استخدام و حفظ و نگهداری سازمانهای کارآمد بسیار زیقیمت است اگر به این سخن شک دارید، پاسخ این 28 سوال خودکاوی را به صورت مکتوب بدهید و صحت آن را امتحان کنید. اگر شما به صحت این سخن هم شک ندارید، این کار شاید جالب و مفید باشد.